اول در مورد خود همین رستوران یک کافه بانوان بعد وزیگه اینها تقریبا شبیه همدیگر اینها رو مختصا تا 67 دقیقه بیشتر انشاءالله اگر رس شد خاموش کنید وقت بگیرید چونکه حالا باید زیاد طولانی نباشه هوا سرده است در مورد این کافه چی هست داخل اینها چیزی چیز رو میخواند ترویج بدهند اینها بدون هدف نیستند قطعا هدفدار اینها دنبال میشند هدف ها رو میشه در چندین قالب پیش بینی کرد یک از اهداف جمع کردن پول هست این که هدفی هست که همه اینو میپذیرند خب پول هست کار هست کاسبی هست پول میگیرن اما یک هدف دیگر هم اینجا هست حالا این کسی که باز کرده کدوم هست که از این ها رو دنبال میکنه؟ اما هر تا در واقعیت وجود داره این سمرات هر دوتا ظاهر میشن. هدف دیگر به صحنه کشیدن اون خانم بلوچی که تا حالا داخل خونه اسیر خونه بوده حالا اینها رو میخواند داخل صحنه بیارن، میخوان از اون بهصللا رکود فرهنگی یا فشاره های قومی اونها رو بیرون بیاورن، و راحت اونها را رو جلو به نمایش بذارند دیگران هم از حسن و زیبایی استفاده میکنند چرا این گوهر دالخونه مخفی باشه؟ این امکان هست و قطعا این فرهنگ هست یعنی حساسیت زدایی مردم نسبت به هجاب حساسیت زدایی مردم نسبت به حجاب یکی از انگیزه های بزرگ میتونه باشه حالا اون بنده خدای که شروع کرده اگر هدف اون همون اقتصاد خودش باشه، جمع کردن پول باشه، خالی کردن جیب مردم هم باشه اما قطعا اون جانب بعدی که حساسی زدایی هست قطعا خود به خود اون سمر و چیزش خود به خود ظاهر میشه حالا بخوای نخواد این خود به خود کم رفته رفته این می آید داخل جامعه حالا بنابراین در این صورت کمی توضیح بدم برم جلوتر در یک کافه هایی که حالا درست میشن عموما یا میگن که رسطوران های کافه سنتی چیزهایی که اون چرا در شهری که شهر توریستی هم نیست مسافر نداره چرا در چنین شهری اینها زده بشن خود جایی هست که مسافر هست یه مسافر برای تغذیه خودش میره استفاده بیکنه اون که محل بحث نیست و حلال هست اما یک تفریقایی رو شروع کردن قطعا در این چند چیز جز لوازمات رانغن. یک از اونها موسیقی اگر موسیقی نباشه سرگرمی نیست، باید مشغول باشن، گوشه ها هم مستفید بشن و چیزهای دیگه هم مستفید بشن. مسئله بعدی که اونجا هست قلیون، تو تا قلیونی نباشه که اونجا دوامی نه نشستنی نیست اونجا بخوام اونجا بشینن جلسه بگیرن و این که باشه دیگه باید چیزهایی که این جلسه رو طورانی بکنه. اون مخلفاتش اون لوازمات اونجا باید باشن تاسیک از اون قلیون هست اونجا باید باشه و بعد خرافات آماده های دیگر آزاد بودن و خندیدن و جوق تعریف کرد اینها که دیگه این چیزهای عادی پس با افتاده شدن برای مردم اینها کی چی این چیزهای ظاهری داستانن اما مقصد همون دوتا تا چیز دودای اولیان حساسیت دودای مرد و نستا این چیزها چون شهری هست مذهبی مقید حساسیت این حساسیت بریم بیرون این شخصی الله از کجا آماده برای هر طرفندی هم آماده باشید به هر حال بعد هم جمع کردن پول هست آیا جمع کردن پول به هر صورتی کسی بخواد حلاله آیا رفتن به چین جاهایی برای اون خانوم حلال هست تفریحات آزادن جا خوب، تفریح، مصالمت آمیز، با حجاب شری، با خانواده، با محرم برو بگرد، تفریح کن، استفاده بکن، از نعمت الله رب العالمین بهره ببر، اما به شرطی که اون اصول و قوانین و آداب رعایت بشند حالا این حساسیت زدائی وقتی کسی چند بار در چرین جلسی شرکت کرد کر، اول شاید حساسیت باشه اما چندبار قطعا میره حساسیت کمتر کمتر کمتر و چیزی عادی قرار میگیرند اگر چیزی عادی شد رفته رفته نسبت به مسائل شرعیش بی اهمیت میشه اینها چیزها عادی قرار میگیرن صحبت کردن نشستن خوردن و اعتیاد قلیون اعتیادهای موسیقی خود خود دیگه اینها آرامش روح و روانش قرار میگیرند یعنی دارن از یه چیز سالم این تن نه بیمار میخوام بیکنم بیمار روحی بیمار روانی احتياج جسمی کالب اونها خود به خود رفت رفت تزریق میشن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم سلام فرمود المرعه عورتون خانم همش عورت هست بعد این کامل پوشیده بشید فاذا خرجت استشفها شیطان وقتی رفت بیرون شیطان او رو تحت کنترل خودش قرار میده دهد و که نزدیکترین جای خانم برای خدا که به خدا نزدیک بشه قارو به اتحا در قار خونه بهترین جا برای خانومه. حدیث دیگر علاوه توضیح ده حدیثو. حدیث دیگر به همین مضمون عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی, تعالی عنه می فرماند که المرأتو عورتون خانم عورت هست فا اذا خرجت استشرفها شیطان وقتی رو بیرون استشرفه شیطان شیطان او رو کامل تحت کنترل خودش نگاه میده بهش الگاه میکنه میگی حالا تو داری میری مردم, مردم چی میگه به بهبه چقدر زیبا چی زیبا این وسواس در قلبش میره وسایی هم میکن تا بر بیرون اول یک آرائش یک رنگ یک رنگی یک زیبایی بهانه زد آفتابی ای رنگ لبی این داره زده میشم چرا تو شیطان اول داره وسواس میگونه در دلش میاندازه مردمی به بحث قضیه با بهانه چی از مسجد میرم بهانه چی میرم بلای ملاقات بیمار میرم بهانه چی است میرم برای پرسه و تعذیتی میرم همین ها در حدیث و با این بهان ها داره میره اما شیطان رو گرفته چی حالا استشرفه شیطان یعنی که در اصل اشراف یعنی اینجوری نگاه کردن دست و بالای پیشانی گذاشتن و خوب با دقت نگریزتن هستین اما در اصل یعنی شیطان تمام قوت خود را برای منحرف کردن این خانوم بکار میبرند حالا میبینیم همین چیزها برای هستند تا که برن بیرون تا که جا احساس در باشد نمایش بیشترن آرائش ها برای ب... همه نه برای بعضی بعضیها واقعا هدف اساسی همین هست برای اینکه خود را به نمایش بیزارن این کارو انجام میدهند. فرمود این کار کار زشتی هست. پس اینکه داخل ای کافی ها و رستوران هایی بخواد بره، اینجا شیطان با او نیست، قطعا شیطان با او هست میخواد او رو حالا کم رفته رفته القاات و سایب و داخل قلبش بیاندازه. تا در از مسیر او رو منحرف می‌کنه این بحث اولش است اما این است کسانی که بنیان گذار چینی فرهنگی که خانواده حساسیت حساسیت زدایی بکنند. فرهنگ را فرهنگ را نه در خانه فرهنگ را مرد خانه باشه این حساسیت از اونها بزودایند اینها تا این که این فتنه وجود داره برای همیشه ووال این برگردن همین شخصی هست که دار این کار رو انجام می دهد. پس این از کسانی چنین کاری میکنند. در حدیث شریف داریم نبی مکرم اسلام فرمودند که من من سنه سنتا حسنه اگر کسی یک روش درست یک راه و روش درستی رو در, در دنیا پای کرد و دیگران در از این روش درست او استفاده می به الله رب العالمین مانی او را اجر می دهد. از دیگران کم نمیکنه. اگر روش درستی رو، اصلاحی رو، پیشرفت و ترقی رو در یک جامعه آورده اجر میبرید اما و من سنت، سنت اگر کسی روش غلطی رو پای گذاری کرد، روش غلطی رو پای گذاری کرد، فرمودند که گناه این روش همهش بر همون کسی هست که این کار رو گذاشته و از گناه اینها کم نمیشن. از گناه خودش. به اینها هم گروه میرسه و به این آقایی که چنین برنامه رو پیاده کرده این گناه همگان بر همین بر میگردم یک حصه از گناه بر این بر گردم. پس کسی چنین سنتی رو بخواد اجرا بکنه روش غلطی رو بخواد اجرا بکنه که خانوها برن در موسیقی ها از موسیقی و استفاده بیکنند از قلیون و استفاده بیکنند این حجاب و حیاء کم رنگ میشه اونهای در این مرض گرفتار میشن و این گناه رو انجام میدهن، بخشی از گناه اینها به همون شخصی که بنیان بنیانگزارست است میگردند و این رزق حلال نیست این رزق حرام هست که بخواه با موسیقی و با قلیون رزق حاصل بکنه مردمو فریب فری بیدهن. حالا یک حدیث که این هست که جوری نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند و بعد این در به اینهی نقش بازیگری نگاه در خود یک بازیگر بخواد که این کار رو انجام بدهد قطعا چنین کاری که میکنه خود را به نمایش گذاشتن از موسیقی بازی کرده در قرآن کریم الله رب العالمین فرماید که ولا لا تخذان ابل لطیف صحبت نکن در خود کلام غلظت بیار در خود باید بازیگن خیلی ظریف صحبت بکنید، خیلی لطیف باید جذاب باشه روز صوت تمرین میکنه تا اون صوتش زیبا بشه بعد این است که الله می میفرماید و قل للمؤمنات یغضن ابصارهن عن بگو به مؤمنات نگاه پایین بیاندازی نگاه نکون نامحرم را و جلوتر میفرماید که ولی اذر ابن نبی ارجلهن ليعلم ما یخفینا که اینها پاهار محکم به زمین نکوبند تا آرایش و ظاهر بشه الله داره میفرمایند چشمه ها پایین درویش کو نگاه نکن و پاهارو هم محکم نکو حالا یک دو نفر نامحرم حالا داخل فکرند این شب تو خود سراوان چنتر اجرا شده حالا اینها تو بخان بکنه علما که کاری به هیچ کسی نداری اما حکم شرعی رو میگی حکم شرعی همین است دو تا نامحرم در یک صحنه تاتر می دستند بازی می کنند خانون نامحرم آقا نامحرم با هم میگن اینها از کجا این مجوز اومده در کدوم شهر و در کدوم فقه اسلامی چنین چیز اومده خانون با آقا نامحرمی بگه بخنده و خود را به نمایش بگذاره دو گناه داریم یک گناهی داری که مخفیانه صورت میگیره و یک گناه داریم اعلان برای همگان ظاهر میشید اون گناهی که علال الاعلان صورت میگیرد قطعا چنین گناهی سنگینتر و بدترین انسان همونهایی هستند که گناه رو علال اعلان انجام بدهن مجاهر به همین کسی در احادیث اونجا خیلی وعید به شده بدترین انسان همون است که خود را علال گناه رو علال انجام میدهند این ها داره نقشه داره را بازی میکنم فکر میکنم ما هنرمندیم داریم فرهنگ را به نمایش میگذاریم داری خودتان را تباه میکنید این کار درستی نیست چون شریعت این چیزو قطعا جواز ندادین فهمون حتی اگر داخل خونه هستید پشت تلفنی هستی، پشت آیفون منزلی اونجا ولا تخوانا بالقرء سدات اللطیف ظریف نکن تا که فیکم الذی فی قلبه مرض اون کسی قلبی بیماری داره اونجا دی امیدوار میشه تمام امیدوار بر بعدم برای شنیدن صدای تشریف مییاری اینها رو شریعت من کرده پس این فرهنگ نیست فرهنگ فرهنگ اسلامی رو د... اجرا بکنیم چیزی که سعادت داره داره برای ما چرا و... وقت خود را رو روی چیزهای بیهوده بخواهی ما صرف کنیم حالا در خود نقش طاعتی کافی ها هست موسیقی در موسیقی حالا اینکه نامحرمن دیگران میبینن گناه خودشو داره اما نبی مکرم اسلام فرمودن صلی الله علیه و سلم اونهایی که میروند از خود رقاصه، از رقاصه و اون کسی که داره ترانه میخونه گوش میکنن موسیقی و ترانه ورا در روز قیامت در گوش اینها سور به ریخته میشه این حدیثی است نبی مکرم اسلام فرمودن در جنگی فرمودند که پونزه خصلت هست اگر اینها در امت ظاهر بشن اونها مستحق نزول بلاها و مصیبت های آسمانی قرار می گیرند یکی از اونها نبی مکرم اسلام ذکر فرمودند کسی که موسیقی و رقص را برای خودش جایز میدونه اونها رو نگاه میکنه و در یک قومی اینها زیاد شدند خود به خود در اون قوم بلا و مصیبت ها سرازیید میشن فرمودند در امت من افرادی میآیند که یستحلون الحر و الحریر قومی هستند حلال میدونن زنا و ابریشم برای مردها و موسیقی را هر بود اینا اینها از علامات قیامت هن. پس بنابراین وقتی که شریعت به اون شدت داره نهی میکنه اینها ممنوع هستند جائز نیستند به هر حال این کا کسی یک بنیان کافی باشه چیزی مصیبت رو درست بکنه اون مصیبت بزرگ خودشو داره بناها بزرگ ممنوع هستن رفتن چنین جایی خرج کردن پول چنین جایی این پول حرام هست برای هم کاسب حرامت برای کسی خرج میکنه هم چنین پولی جاهزی با موسی و با قلیون فرهنگ مردم را اونو خراب بکن. اینها حلال نیستن تفریح ما معنی تفریح نیستین تفریح بکن و رو بگی برو جای پاکی جای جای که اونها بتون استفاده بکنن فرهنگ اونها حفظ بمانه اون روح و روان اونها به آرامش برسه نه که ما اونها رو بخایم وسیله فرهنگای غلط اونها رو آسی بیزنی آسی بینار رو بعد جلو نهار رو بگیرید